مهم مختصر به شریعت اجماع بود از اجماع دو سالی مهلت احسه که خبری ریگ از به, صغرقی به صغرقی. بحث فقه ما در بحث جاریه بود که در تاریخ فقر شیعه بلکه در ما آره بشیه این سخت تربیر اجماع داشته از به لحاظ فقر اجماع در میان شیعه در قرن عوض عوض در شروع میشه با در تفکرات علمای ما خصوص علمای بردانه این شهر سایدوش را کردیم تا سال قرن پنجم نمیده قرن پنجام که هجرت شیخ نجم از کهیم علمای قوم این اصطلاح اجماع ها رو بکار نمی بودن علمای برداد بکار نمی بودن و سری گرایش اصلی بین علما حس می یکی علمای قوم که اجماع ها رو قبول نداشتن در مقابل اخبار رو می یکی گرایش مرحومت سهر محتضا که اجماع را قبول میکرد و اخبار را تر کن یکی هم گرایش شیش که هر دو را قبول میکن از خیلی بین چهارسد و پنجای ها به چهارسد و تا زمان ازلام حدود دویست پنجاست آنکه ازلام حدود چهارسد و ما حدود 800 را حساب میکنیم به طور متوسط در تحریفات ایشان تا این زمان یعنی این و سال اون مکتب کلی عقلیگرهای ما یا متکلمین ما به اصطلاح چه در مجار تفسیر چه در مجار عباره چه در مجار فهر این ها به اجماع می‌کردند. شبیه کار سیده متضا یعنی اگر خبر رو هم میوبردن بیشتر نظرشون به مضمون خبر بود نه به خود خبر به محور خبر از کردن شهر این روز مبانی سیر و معتضا از خواب رو و لذا گاهی میدونیم که مثلا در کلمات اینها روایاتی میاد که به هر سر ظاهر لحیفه لیکن در واقع اونها رو شواهد او رو قبول داشتن مطلب شو که اینشالله خلال بحثای امروز و بعد جاه و تصفیقات فقهی این مطلب دیگه شود کاملا روشن میشه ارز که ایکی از مزایای این مرحله ما یکی دو کتاب کامل فکری داریم از اول تهارت تا آخر که این دو کتاب کل عباق فقر رو با فره اجماعی تحدیف کرده دنبال خبر دارسته یکی سراغر ابن ادریس یکی قرنیه مرحوم ابن زهر حضرت کتابه دیگه هم آمده این زمانی لیکن تعبیر ایش ما هم به کار برده شده همون دیگر نه فتاوایی که بعد از شیخ ما شد. اذ خدیم که در عبارات شیخ طوسی گاه تنوع تعبیری هست. مثلا ذهب الیه علما اما عبارات معنون سید موسى غالبا تعبیر ائمانی و اون چیزی که مولانا از سید مرتضی در ابواب شریستداری تعبیر کامل داریم دو کتاب ناصریات و انکسار ایشان انتصال ایشان فرق خلافه و هدفشان فقط خصوص مسائلی که انفراز شیعه هست ادعا شده که فقط شیعه باید ولی ازام ایشون در خیلی از مسائل بیانون ما ادعای انفراز شیعه ما بیان بزنه ما انفراد نداریم کلانی کلانی هم باید و ارض شد صاحباً مرموم شیخ مفید این کار باید شدن انجام داده کتاب باید شده کتاب رساله مختصریه با قدیم و کرراسان یک کتاب کتاب چند به نام اعلام اسمش به این عنوان در اونی که انفراده نمومی است. و سر سلموزا در حقیقت یه... نه این که این کتاب داده همون بحث رو به نفر داره و جاهایی که شیعه به عنوان انفراد داره ایشون میدن دلیل اینا اجماع المتکرف یا کتاب یکی هم کتاب ناصریات ایشانه که هر شدن ناصریات ایشان ایشون بوده در فرما لحب غلق داشته عن امام ناصر شدیه الحسن محلی اطروش که تقریبا میشه باقی زرگان اعمی زیدیه شمال ایرانه زیدیه به لحاظ حکومت اول در ایران به حکومت تفسیده شما محمد بن زید ابو حسن بن زید ابو محمد که معروف به دایی ایشون زمان امام هادی سال 250 هجری در شمال ایران به اصطلاح برای خودش حکومتی برپا کرد و بعد از او تا تا حدود 304 یا 300 هجری تا حدود 300 هجری در شمال ایران بودند و منعزله بودند زیدی شمال ایران منعزله شدن تقریباً بعد از سالهای چهارسد خورده خوردهی تقریبا کله زیدیهی که در منافر شیعن،, شیعن ایران بودن کلن مضمحه شدن و به اصطلاح خود زیدیه ها متحول به امامیه شدن برگشتن به امامیه که میمخوام وارد بحث شد یمن یه ده بیس سال بعد از اینه از زیدیه یمن تالا موندن یعنی یمن تالا زیدیه اما شمال ایران دیگه از بعد از اون جریانا دیگه زیدیه و این الحسن المعلی معروف به اتروشه الكبير این خیلی معروفه به این زهیه در شمال ایران هم این از همهشون بیشتر شخصیت علمی داشت و شخصیت قول خودشون همه رو معمولی به خودش رسید و مرگوم سیل مرتزا مادرش نبه این اتوش کبیره مادر سید مرتزا احتمالا ما میدیم پدرشون هم زهیه بوده خیلی برد نیست که اصناع باشه به هر حال اطروش کبیر رسالهی ای داره ایشون دیگه به اصناع نه رو بیبرمون میشه. نه به این معنا، اون جاهایی که مخالف با آراب شیعت به ذکر داده نام الناصر یاد و خیلی عنوان قاله. یعنی جد مادری ایشون اطروش کبیر کرده یعنی میزیدیت بعد بعدش میکنه که پیش شما رو اینه و اونجا هم consensus به اشمام میکنه اما هر دو کتاب کل عقاب فهم نیست ناقصه هر دو کتاب براد انفرازات و موارد تعلیم و کلمات جردی کتاب سراير و کتاب به اسا ابن زهر هر دو کاملا از اول حساب شده در هيئتی کتاب های کاملی که روی مسلک اجماع نوشته شده در قرن ذواقه کاملی مثلا از کدم بیگزو عرف ابن زهر خیل 710 تا 20 تا 15 تا 10 تا حکم میاره اضافه از قضای اجبار و قضات و بعد یه بدیل علاضه که کله الاشم ما تو یالا همه رو تو یک جا جمع کرد بعد علاضه داره تو 20 تا 30 تا شم تا حکم رو یک جا میگه میاد بدیل علاضه کله الاشم متکره پیاله کتاب لذا حساب قونیه و کتابه ابن ادریس از این جهر خیلی مقتنمن برای بیان فلحه اجماعی ما البته ابن ادریس دا این روالت هم اما اعتمادش تو اجماع وقت تنبع ابارتی هم یواشواش شروع میشه مثلا ابن ادریس میعنی در محسلین من از خوابنا وزه اول محسلون هم یه اون اجماعی ما توی ابارت ابن زحبه بیشتره بعد از علامه این تنواع تعدیلی بیشتر میشه تو کتاب شید اول شید سانی بلا خلافن عجب بودنه غیر خلاف نیون قلدم یا قلق تعاویر این مقداری عوض میشه چون ارز کردن برنها مرهون عاشق از زلال توستری در این کتاب کشور و بنا این هم داره که آیا این الفاظ حکایت اجماع فرم میکنن یا نه از اجابی خود این الفاظ من که تاریخ یه مسئلی به خدمتون ارزم هم هر دفعه اینه که وقتی ما فهمیدیم این الفاظ در غرن هشتوم و نهوم و دهوم آمده طبیعتاً ارزش علمی نداره طبیعتاً نداره اون حاصل خودمون یه تجهشم استدلال میکنیم یه چیزیس که در قرونه برد جگاه شده شما درس ایزابسه کلی بذاشتی چه در تجیمان چه در خبر اون شکلی پیش ما از همه چیز مهمتر اصناده از محسومه که اصطلاحاً اسم شروعش این تلقی این خیلی پیش ما مهمه ثابت بشه این مطلب تلقی از دعیمه شده در مقابل اون تبنی یعنی کاری رو که خود فقیه انجام داده آزتاً این طوره تلقی امکانه ارزش داره بحث از در درجاتی که ما اصول به اون تلقیه رو میکنه. اما تونی ارزش ندارد یه هم رجال و نه رجال طبیعتاً تونی که ارزش خاصی نداره حالا شهید ثانی قائله در عقل دهم ده بود اگهشون فهمیده باشه دیگه ایشون احتمال تلطفی در مثل شهید ثانی و صاحب مدارک و شهید اول دیگه تقریبا احتمال تلطفی کلاً منتفیه وقتی احتمال تلطفی منتفی شد دیگه اون ارزش رو پیدا نمیکنه که روش بحث بکنیم پس اگر ما اینطوری اصطلاحا کارایی بوده که بعديها آوردند اصلا در عبارت سید مرتضیام ندونه مثلا میگه حضرت سید مرتضی ما شما تلقی در ذریه نمیخوام میگم قریه باز در اخر چیزی ممکن است خیالی بر بشه اما نصرت به شهید اول و شهید ثانی و امام مقصود مقدس اردبیلی صاحب مدارک ای این مرحله سوم از حال ماست چون مرحله اول از حدود سال‌های 600 تا 700 و احتمالاً نظری، اما احتمالاً از این زمان‌ها شروع شده، تا 850. مرحله دوم از 850 تا حدود 700، مرحله سوم از حدود 700 تا 1000 000. این سه مرحله، مرحله بعدی از بعد 1000 سال تا زمان ما، یه تقسیم بندی ما برای اجمال در پیش شیعه که شیء که نوشته در جایی نیست، و اینها به لحاظ هم به لحاظ تحریر خودش و هم به لحاظ ارزش اونها که تا چه حدی اینها ارزش دارن این اجماع تا چه حدی ارزش دارن و نحوه کارچه و مثلا زمان ابن عدریت ارز کردیم یواش شواش بین اصحاب رو جو بحصول عملیه دیگه مشکل نبود این توضیحش اصلا میخوند تکارشون این جو به اصحاب اینه که مرموم آیت سستری میگه گاهدوه که ابن عدریت مثلا میگه مساله این قوره چون اساسو برای اجاره میشه اصحابنا و اصحابنا به اجماع اساسو برای خواهند یک ادعای اجماع رو قارده کرده ادعای اجماعی نیست یعنی گفته چون اینجا اساسو برای اجاره میشه اساسو دران اتفاق علی الاخا فقيه حکمینه اینو مرحوم آقای خوشتری در مواجهه استاد الله در کشو و بنا مواردی به وجود امرون شیخ انصاری در مسائل چیزی که در رساله ایشون درسته این مطلب ایشون درسته این مطلب اجماع الان درست ولی خیلی ایشان تحلیل نقراند من تو زین هم میگم چون خیلی وقت رب نگاه تحلیلی نه رو ندارند. تحلیل در واقع اینه بین بعد از شیخ توسی یواش شواش رویه با اصول آسان شد قبل از او خیلی مشکل بود وقتی این اصول یواش شواش جا افتاد به تعبیر مرمومه ابن عدیس اجماعی شد اجماع با اون نیست اصولا اصحاب ما جای رجوع و اصول نداشن میگه مرموشت در اول مقصود میگه اصحاب ما اینقدر رب مغیله که حتی نسل رو لفظش اول نمیم کن نصف دیگه نمیم و در ذهنیت اینها اینها این بود که رو حسول این اشتحال این قیاس در یک اصطلاح این بود نه خصوص قیاس اشتحال در به قیاس, قیاس اشتحال میگفتن و این شامل استثار در خواهر رو بکنیم میشد و این و اصول رو بودن اشته اون وقت این شیعه بناش بی این بود که ما فضح ما فضح منصوصه اصلا ما با اصول مراجعه نمی کنیم ما در تمام موارد روایت داریم دلیل داریم اصلا این از خبر و جدیدم نیست این جابره نیدید جعفی خب یکی از بزرگان ماست در خود کوش شخصیت بزرگی بوده اهل سنت هم به دیده احترام بونه گاه می کنه یه چیزی هم است که دیوانش شو سواره از چوبو شده دروب این احساس من در عبدی یک شخصیت اجتماعی خود اهل سنت رو حساب دن خود احل سنت بزرگشون مثلا نه احل سنت داری و چهار توی اول مقدمه سعی مسلم مثلا یک چیزی اجابه نمی که برای احساس می جاورونی یه شخص مثلا ابو حنیفه که اعتراض به داشت همین بود یکی از مهمترین کسانی که جابر رو پیش اهل سنت گفته که زابان ابو حنیفه است سرش همین بود چون ابو حنیفه میگم من بیرم شب میشینم خودم برای خودم یک مثلا تفریعاتی درست میکنم که در روایات پیغمبر نیست صبح جابر تو خیابونی میرم مثلا چون کوفی بودن هدوشون بهش میگم که من همیشه مطلبی مثلا به ذهن مصر. جورنی نامه من تو این روایت دارم هر چی ما خودمون جهل کردیم یه ما روایت داره خب میگه این دروغو سورا داره این, این اشعار سر چی بوده جابر از امام باقر یه کلیاتی گرفته امام باقر محسن بگن شریعت مقدسه قابل انتباه با کلیات ما تو شریعت مقدسه خیال نکن از اصول تفریعی رسو میکنیم هر چی اصلی به اثارش به رسول الله میشه این تفکر بوده این تفکر کلشیگی برای ابو حنیفه جانی بوده. دوست میگه بهش میگه من به فرو درست کردم. حجارو میگه نه این کارشوی خود میگه از رسول الله ابو جابر محمد از امام خب عوامانی ما هم هدیتی نداریم جابر جد. اونی تو با امام باعث در شد. ابو که که وقت باعث عوامانی فهم املا با اون ابو درو میگه جابر درو چون <تصفيق> دعوانو میتوند سر چابه بقید کرد این من علیه و بر این بود چون الان در فقه عهد سندن ابو حنیفه رو امام فقه تخییری یا فرزی، یا تخییری میدونم اصلاحشون اینه یعنی اولین کسی بود که در فقه تفریعات ایجاد کرد لوکان فضا لوکان فضا, لوکان فضا لوکان. این رو میگن اولین بار در فقه اسلامی چون یه توضیح از این کار زمان رو شروع شد. آمدن از عمر سآل کردن که اگر این باشه عمر کنید واقع شده گفتن در ارز کردیم عمر شلاخش بردبالاگه و از فرضی ها سال مدنید از واقع سوال کنید فقه فرضی رو عمر جلوش گرفت این در میان تابعین هم من تا ابو حنیفه ابو حنیفه به اصطلاح خودشون این بسایین سانسورو دیگه که عمر ایستادو فقه فرضی رو بابش باز کرد یکی حرف نامرگوشیست که هر سندت گفتند اصلا اسم امام باقر بغره اصلا باغر بغره لهم این معناست بغره همون تفریع و فرضه بغره علم بغره ها در حقیقت اولین هستی که این فقه فرضی و تقدیر رو در مقابل عمر باز کرد امام باقر و ابو بچه ابو حنیفه متعذسی هشتا تا هشتاز و و حدود به اصطلاح سی و سال از امام کوچکتره به هر حال جاور پس این بحث دروغویه جابر نبوده این بحث واجهه مذهب بود این چارچوب مذهب بود این اشتال کار سر این جردان بود چون جابر از امام باغر نمی کنه تمام اون فروز و تقدیراتی که شما میگی اینا هستانه در میاد تمام اون فرقه فرضی که شما میگیم این قابل استظهار از سنته اونا بخواست هم میگن نه تکه فردی رو ما فرض کردیم لذا ابو حریفی میبین فرض کردم جابر من جواب داد حدیث رو هم نهار ابو جربان و عدیان آبار هم دارست رو خب من فرض کردم این که ما در معامل رسول الله نیست لذا جابر در حقیقت تحریفش به خاطر این نکته اساسیه و لذا هم ما در روایات زیاد داریم خود ما هم داریم به امام صادق به امام باقف ارز کن ارعید لکان کذا حضرت ما اهل ارعید نیستیم موجه رعی نداریم که ما هرچی بیمون رسول ما منشه این الا کتاب و او سننه. بله شما ممکنه نفهمید ملکفل کتاب و سندت نشید این امیتار کن فکرمو سغره این کتاب الله و عزتی هم مال همینه یه برد اون بحثه میتون سابقا نمی اشاره کنید قرض هم مطلب چیه به این اصول ترخیصی مثل اساس برای اینها ها مراجعه نمی کرد تا مثل ابن زیاد ابن اساسل برای و انزم کرد این کلاره گاهی که هم اساس برای, برای در موقع روایت میگیره گیرد خیلی هم عجیبی کرده مثلا دیگه در زمان ما این کار برداشت یواشواش از این زمان یه قبه که با اصول از بین رفت در سبانه. دیگه خیلی و وقتا اصلا فقه راوندی با اون مقداری که فقه دوره فقه از قرآن ایشون هم با اجماع تمثب میکنه راوندی هم قال بوجه اجماع خبر را قبول نمید پس یک این افراد دنبال خبر هم. دنبال اجماع نه خبر شبیه مکتب زهر مرتضا این یک دو چجور پیش اینها دعوای اجماع پیدا شد این یک نقطه خیلی مهم این قسمتشه همست کردید در عده زیادی از مسائل چه سید مرتزا چه در خلافش و بعضی موارد در مقصود مواردش این اما البته گاهگاهی هم تو مسائل تفسیر تو تبیان داره یا مثلا توی کتاب شافی خود مرومه چه شیخ در تفسیر شافی شو همه ایام حجوم بخانه ازداریش رو میگه که اجماع علمای ماست که هر سمی بهت نکردن اینکه دود از خانه بلند شد اینکه یک مسئله کلامی تاریخی هم تمثل که به اجماع میکنه چون در خلاف در عده از موار تاریخی هم یه بحثی هست که ادهی اصلاحل سنده هست یعنی اصحاب رده یا مفتر دینه برده رسول الله که ایش مالکه لنقیر هست که میگن ابو بک با اونا از با مالکه هم بسته رو نورده به آخر فضایی که میگه این دنها انه از حاضر دلم یکون رو مرتدی اول اصلا با که ازارم مثلا تاریخی هم میگه این دروغه این که میگن مالک نوغیه مرتد بوده مرتد نیست هر از میخوام بگم که دائره اجماع اینطور نبود که در فقه باشه تو خدا بحث اصولی خبر واحد شفت دائره اجماع گرده دایرهش دایره فقه نیست توی تفسیرش داره توی تخصیص شافی داره تو کتاب تاكيد اون بحثیه که ما الان بیشترش کار میکنیم دایره شفه این اجماحات از کجا اومد همین طور که ادعا شده 200 سال بعد از شیخ طوسی اگر 200 سال بعد از شیخ طوسی اضافه میشه 6 سال 650 نزدیک همون تاریخی که ما قرار دادیم یعنی 750 سال پیش از برنامه دری تراس مونی سنتابوس از ورنامه دری تراس نظر میکنه که 200 سال علمای ما مقلد شیخ طوسی بودن درسته این مطلب این مطلب مطلب و سهی لیکن نکتش اینه مقلد نبی این اسطلاحی که ما میگیم اینا اشتباهش اینه مقلد بی ایک معنایی که من کرا رو نعرض کردم تا الانم مقلد شیف توسی <تصفح> <تصفح> تا اون رو هم تا همین لحظه ایگه که دانتون میسه مقلد شیف به چه معنا؟ به معنای این که مثلا شیف توسی این با مثال چند تا مثال میزنه چند تا روایت ارده و کتاب ها معروفه این کتاب حسین صحیفه کتاب نعوذ الکفراسه کتاب الصحف چند تا روایت داره که انسان نظر احرام کرد از عراق خداوند به نعمتی دارد نظر احرام کرد که از عراق احرام ببنده امام تراد تالیف فل عمل بکنه به بدن شفقه بکنه واجب و خب از این روایت داریم لا تفهم الا من المواقیت التي وقتها رسول الله ليس هم بر لایم بقی, لای بقی که انظم لا ارام اعلام من مواقعیت التي وقتت الله. اصحاب ما قبل از شط مثل م کدی مثل مربصدور. کلا این روایات نظر اامم و الاقهار کردن با اینکه مساداش هم مشهور که سیات می خدا نکرد شکت توصییت آمون ده باشه سه تا روایت تکرار احتمادن یکی از کتاب سین سعیده خب کتابای معروفه یکی از کتاب سفاره یکی هم از کتاب نواده همی فکرونست که اونم معروفه خب بیشه در ستا مستر این روات دو آورده دروفه نمیگو تو مساده موجوده حالا سنده یکیش هم فرص که موثقه باشه یکی سعیده باشه بعد سندهش هم کنادم خب اون علماءی ما اصلا این روایت ترک کردن در کتاب پتواه هم مثل مرمون مغنعه و اینه ها این از این پتواه رو کرده، کردن <تصحیح> شیخ توسی چرا آورده؟ شیخ توسی نفهمی داره باید هست لا ابرام الله مداره باید شیخ توسی چی گفته؟ گفته اون رواهد هست از این برای این سطح رواهد مؤثره هست چون در دو تا مصدر مشروعه نسبت این رواهد هم با اون رواهد تخصیصه نسبت بین آموخات میگن تا آرز غیر مستقر یه یعنی این مقبول خب چرا ما این تایفه را تحرش بکنیم؟ ما این تایفه را قبول میکنیم تحصیص میدهیم اطلاقا پس مقلد بی این معنا خود دقت بکنیم مقلد بی این معنا یک این روایات معتبره چون شیخ نه در سیست مسئله معتبره دو قاعده تخصیص یک قاعده مقبولیه. و در اینجا سه تخصیص وجود داره. حالا ممکن است مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ کلینی تقریباً قاعده تخصیص قاعده جمع مقبولی قبول نمی‌کنن، میگن مواردش فرق می‌کنه، این تعارض داره با اون رو باید. چی بگن اصل جمع رو؟ خصوصا یک به واضح فکره داره بگه لکه انتوهره الا مدن مواقیت الا لمن اراد العمرت فیرس فقط یک مورد استثنا کرده کسی که میخواد عمره در ماه رجب انجام بده و هنوز تو راه نرسیده اگر دو درست سبن تا میخواد ماه شعبان میشه میخواد فضل ماه رجب از برد همون جوی خودش احرام ببنده تو ماه رجب ولو قبل میخواد این بباید تو یک دوباره سقیه همین یک مورد استثنا شده خب ممکن است مرحوم کلی رگو چون یک مورد استثنا شده پس این مورد دوم این استثناء که ندوده اینطور رد کردن جهل الا نفس یعنی اوه منال کوفه و انفعا فوقو خب اینو این ما قبول نمی کنیم اصلا تهاوز نمی کنیم ما اینو به روش تخصیص نمی دونیم مضافا به اینکه خلاف قاعده عامه است یک کاری اون قاعده ما اگر یه کاری فی نفس مشروع نباشه چطور با احران با نظم شروع میشه یا ممکنه کارگه مشرو با نظم شروع بشه این اشکال معروف عقیبه با خالص پس به این معنا خوب می دون دقت فرمودید این تقلید بودن نه به اون معنایی که شما این تقلید شیخ نذا فخ مثلا شیخ طوسی یک نفر رو توصیف یا یه نفر کذا نجاشی توصیف نکرده این باب مساله این به این معنا که شیخ تا حالا نقل کرده و توضیح کرده گفته خوبه پس ما اعتماد بکنیم. این اعلیطانی مراده از تقلید در اینجا اون مطابقت من غیر دلیل نیست یعنی اون مقدمات فکری که شیخ مطرح کرد در قرن پنجم اون مقدمات ایمان آورده پس مشهدی انجام دادن مش الان اگر... خدا رو خونی میده. فرض شد ناجزی داره که این دیگه. جمع خب همین دیگه، میگی این بین عام و خاص. روایتم سندش هر روزه مشروطه داره، کرده پس اون مشروطه قدم. وقتی بعد از شیعه دقت هر کسی که فقهای بعدش از شیعه، خب این دارد. وقتی دو طبقه که این سال 200 سال،, سال یک تصوی دادن و هر 100 سال به طور طریقی سه طبقه هست به طور طریقی 100 سال 3 طبقه سال می حالا یا 30 سال یا 40 سال به طور طریقی 100 سال 3 طبقه هست 250 سال 300 سال،, سال،, سال از یک چیزی گذشت، 250 سال از یک محددی گذشت، این یعنی در حدود 7 طبقه 8 طبقه شده 7 طبقه 8 طبقه این حکم قبول کردن علامه که نیست چه میگه اجماع این اجماع ما اجماعه اینجا اجماعه شما اینجا هست بروشه چه تشکل اجماع. شده. اون تشکیل اجماع در حقیقت اینطوری شد و الله اگر بگیم و لذا و طبقی این شبه و ما خیلی راحت تحلیل کردیم خیلی از مواردی که ادعای اجماع در کلمات ابن ادویز بعد ابن زهره بعد علامه اینها آمده ادعای اجماع آمده وقتی نگاه میکنید امورش ایناست یا یک ادعای از موارد اینه یعنی که شیخ خودش ادعای اجماع یا سید مرتضیا کرده اونم ادعایش کرد یه موارد زیادترش جاهایی است که شیخ فتوا داده اون دقت کنیم بعدها به اون فتوا عمل کردن شیخ هم ادعایش ما نکرده فتوا داده دقت میکنیم بعدا به اون فتوا عمل کرده خب هشت طبقه با اون فتوا عمل کردن چی میگنگن این اجماعیه این اجماعی فالا اینجاست خب میگن چون قداست شیخ و عظمت شیخ این اختضار کرد این فتوا مثلا ما قبل از شیخ صدو قبل از شیخ مفید در محنعه و شیخ توسی در نهایی نداریم نه که دودای اون نجسه حالا مرحوم شیخ صدوق شکار کرده دو مورد از نجاسات کرده همون دو مورد آورده اما لایجوزو به اون نجس در موقعه شیخ مفید آمده و در نهایی شیخ توسی این یواشوش تو سرائرم آمده تو ابن زهرم آمده تو در آن در سنجم که لایجوزو به اون نجس این فتوا قبل شیخ توسی و مفید وجود نداره تو روات هم وجود نداره این فتفا رو مرحوم شیف داده به قرار کرده بعد که مرحوم شیف داده بعد فتفا اون دادن این منشع شده که بعدها امثال علامه ادعای اجماع بکنن راستان از 8 شباقه اجماع برده شده مشوقی هم میتونی فتفایی تقییه این صافر هشت زیاده و که داله من چند مورد تا را از نسال میزنم شاید مثلا از این موارد لطیفتر و تر موارد باشه که اصلا روایت نبوده شیخ توسی یا روایت بودنش مشکوکه شیخ توسی در کتاب تحضیح خودش یه روایتی رو از کتاب علی مجرد می فقط میکنه که از کافیه هست اون در کافیه هست. فاصله بعدش میگه قال علی یا مثلا از تا اخی از به استعداد سوال کردن چه به خوک که ولقه فلعنا با زبان از داخل اینا براده هم فرمول هفت مرتبه شسته بشه سر به مرتبه. این زید رو اینسان خیالی میکنه مرموم شیف توسیه از کتاب کافی، این زید تو نیست این زید یه فقط نیست که از باب غلوق خیندی در سر روایات احل سنت هفت هست روایات ما سه ببشه آنشه در سر احل در مرتبه شسته بشه روایات ما داره صفر در خنزیرم اونا رو ندارم ما هم نداریم الا همین حدیث واحد این حدیث رو شیخ هم فقط در تهذیب آورده خود دقت بکنه زی به حسب ظاهر البته اضمام داره شیخ خودش در کتاب علی بن جعفر دید اضمام نشه اما فعلا زی روایتی از علی بن جعفر که در کتاب کافی است تو کافی هم نیامده این زی نیست به قسم بعد ها در ورن، بعد از مرموم کلینی خب همون نصحه کلین اختیار صدوب هم بوده صدوب هم نقل نکرده این متن رو که هست مرتبه در واقع خوب صدوب هم شهر تایی روی توی شیخ هم فقط در کتاب تحذیب نقل کرده کافی نقل نکرده فقیر نقل نکرده اون بعدها در قرم یازده هم در زمان مجلسی یه نصحه از علیه مجلسی دست مرموم مجلسی به سا سال قرار گیره که یه چرفت داره برای خودش تو اون نسخه هم نیامده این چند تا شد <تصفيق> من شبیه فاصله زود افتن. بعد از قبل از مرموم کلینی ما اول کلینی رو گفتیم قبل از مرموم کلینی استاد ایشان یا استاد استاد ایشان مرهوم همیدی کتاب در نام قربل که رسمت های مهمه از, از کتاب علی این آورده اونجا هم نیامده تو کتاب کلینی نیامده تو کتاب صدور هم نیامده این یه دیکه اینه منفردن شیف سوسی آورده در هیچ مستق رباری هم غیر از کتاب علی این جرفه هم نیامده اون بقرد برورده در کتاب حسنی سعید و اصلا حسن... نیامده منحسه به اینجاست درست شیخ هم در هیچ کتابش فتبا نداده این یعنی نه در نهایه فتبا داده نه در محصول فتبا داده نه در خلاف در هیچ کتاب فتبایش هم شیخ فتبا نداده یعنی نه تو نهایه تو خلاف تو خلاف, خلاف مصیبی آن میگه که در باقی خینزی مثل سگه چون خینزی هم نامنال اونجا الکر این سنی ها داره اده از اهل سننه خنزی رو ملاحقه به سرک کردن بایدن نامدن کرد این رو هم شیخ داده اما فتوه نداده بعد از هم چون دنبار اجماع بود مثل ابن دریس اونا هم فتوه نهازه ابن دریس هم فتوه نهازه این شون فتوه تا محقق مرحوم محقق این روایت دیده فتوه ای اصحابم دیده که محرق نه هفتون فتوه ندازه هم کرده از اون هم فکر کرده رو صحیحه چون علیه هم کرده در از بر که یستحب و حرف بار مثلا بعد از المحقق سربرده خوهر ایشان معلومه ارزامه ایشان گفته خب همون مبنه مبنه, مبنه حجر خبر واخه که دیروز از کرد ایشون مثلا خبر صحیح امرم نکردن نکردن ایشون اولین کسیست ببینید تنها کسی که این روایت وارد قرن 50 تنها کسی که این روایت عمل کرده به زوال ضعیفان قرن 8 تفاوت های سالا ها رو ببینیم ایشون گفته روایت صحیح است اما ایشون دیگه ایشون اول اینکه است که فتاوه به وجوب نذر نه استحباب از بعد از علامه بینا مشغول شد تا بعد از ما کرده بعد از علامه از بعد از علامه بی این چرا این تحت تقلید نیست مثلا آقای خوی یا از دی دیگه من از که از, از, از, از آن موجودین یه جریع نبود نوشتم بشت نشید این دواره تنگیه اشتاد ندارد از خواب مهمن نکن و بیدیم تصور چی بحث حجیت تعبودی خبر تا این آقای خودشون قاله حجیت خبر نبودیم چرا برن میشون روشتیم بحث بحث بحث خبر که ما این ها رو تیاسنده با این شرح حالا خوبیش اینه که این کتاب علی این کرده یک سه تا مسطر داریم قبل از شیخ بعد یک مسطری زبانی داریم بعد از شیخ اضافه دیه که این مسطری ای که به زبان بهار بوده در اختیار صاحب دارالم اسلام بوده این موضوعاتش سابقه دار خیلی دائما نعر نکرده این کتاب در اختیارش بود ولی اونجا در اختیار ایشون بود خب پس ما چندین مستر را به کتاب علیه نجرفت هم داریم هیچ کدام نهب لکنم فتوان هیچ کدام نهب از اجرایی که بعد شیخ هم ندادن این که شیخ اجبا اول خب مزید اجماع را تو, تو همین مسئله بعضیه معاصر ما از بعد از هزار, هزار سر این ادعای اجماع اینجوری هم گفتیم که هیچی زودتر بردیم اینا اینام ادعای اشمال کردن اون کسایی یعنی همی که دنبال از خبر بودن باید خبر صحیح طریق شیف بردی مجرفر صحیح فرصورات صحیح است و قابل اعتماد یک مثال براتون اعرض کرد یک مثال دیگه که باز از این وقت اشاره چون اصل روایت بودن اشتوشن میتونی به نظر ما این احتوان در نسخه هاشی از این ناشی رو بوده وارد محنش کرد از این بودن روایت بودن شوشن یه قاعده است به نام قاعده ای امکان اگه برستم تو سه شار دو سه دقیقه بشتر برخنن. خب الان دیگه میرونی در قاعده امکان شبه به سالان نوشتم هم بحثه این امکان امکان حقوقی امکان ذاتیز امکان استعدادیز امکان استقال باید که حرکت رو حجی بوده اقسام در بحث فرصه بوده همه رو برده شهی جو برگرد که کدام امکان مع اولاً متن قاعده هنوز محکم مح... مح... این ترجح نشه در کلمات اون چیزی که من میگم ازش نه همه کلمه چی این اصلا متن قاعده چیه <تصفيق> کل ان و ما امکن ان یکون حیزن کل به نذر به خونی مبتدا ما موصول هست در کتابت جدا مینیسن کل و ما به نذر جدا مینیسن این ما موصوله کنایه از خونه یعنی کل و دمن همکنان یک و ده این یک جو قاعده امکان خونده میشه یه جور گشینه که کل به فتح بکنیم ما در اینجا زایده از موصول نیست کل در اینجا مقمی بر فتحه مقرب نیست مثل ورسور قضیه شرفیه واقع میشه کل ما کافشن اون کل ما هم, هم اینطوره هم متصل درشته میشه فرق از بین کلمای متصل با کلمای منفصل اگر منفصل شد ما موسود است کل بهش اضافه شده اگر متصل شد ما زائد است کل اصلا مقنیه مرخونیست مقنیه بر فرحه بر ظرفیه کلما کانت شمس و طالع کانا نهارو موجوده و سهمون. حالا خود قاعده امکان کدوم یکیه؟ کل ما امکن ان یکونه حیصه هو هست یا کلما امکن ان یکونه حیصه هو هست این ادعای اجماع شده دقیقانه خب ما میگیم به عقل و خب فارسی مثل در زمان مثلا محقق و اینها آورده شده به ادعای مثلا به محقق اما شاید علامه داشته باشه از همون زمان ها ادعای اجماع در این شروع شده به بر به عقل بعد از قول فعلی نوشتند اون تو روایت نیامنده این عبارت فوادس یا به قول خودشون مستاد از کلمات وقا و روایات و در روایات هم به فایده نمیداره بحث اینطره کلمه امکان که امکان بشه معناس است مادام که در روایت نیامده دقت می‌کنه خب برمیگردیم به عقل حالا که در روایات نیست می‌بینیم نه در روایات وجود داره نه در کلمات اصحاب وجود داره یک مناسبتی مرحوم شیخ توصی در خلاف این عبارت آورده اونم در فقه مقارن کلا ما هم کنم نبوده این شیخ هم در کتاب و گشت بشنن نمیدونم در خط بکنی حالا این عبارت اصلش چی بوده اصل عبارت مال فقهای های هنفیست در مخصوص سرفتی است. ما هم هنگلن یکونه حیث آورده خب اصل اصلش چی بوده از قرن دوم که دیگه فقه کاملا جا نیفتو بحثه فقهیه را که به معرفت الهیصه خب واقعا یک مسئله سنگینه از نظر فعلا آقا که در مسائل شده واقعا کار سنگینه تصادف از نظر علمی هم تا کتابایی که 20 سال قبل الان توذیکی نگاه نکرن اصلا از نظر سوابق الهی و آناتومی فیزیولوژیشم گیر دره حقیقت حیث چی خونه ریس اجمالا میدونه خونه ایز خونه طبیعیست که از ایک, ایک حرومانهای معین در جزاره داخلی رحمترش روح میشه که رابطه هم با حرکت ماه داره نبا خوشید و استحاضه یه خونه غیر طبیعیست اینه اجمالا میدونن، اما تحریقش رو خیلی روشن ننم اون وقت راجع به شنافت خونه ایز چون اشتباه میشده دو تا محتب مخالف در هم مخالف با هم در میان دنیای قرن دوگون بوده اهل کوفه یعنی ابو حنیف معتقد بوده به تو به عادت برای شناخ دم حییر عادت بزن که پیش ما هم بین این آدم میوار که اول امارات راست اه. اونا منحصر مین اهل مدینه به اوصاف برمیگشتن نه به عادت پر رنگشت بود شده سوزش از این اوساف به اوصاف برمیشت هر نفی ها میگن چون عادت فوق العاده اماره قریه اگر مثلا عادت شیش روزه بود در اول عادت خوندی پنج چهار روزم خون ندید آخرم خوندید تمامش حیزه و این قاعده کل ماام کهنی خوون حال با اون حیز این قال ریش در کجا بوده چون ایام عادت امکان داره حیز باشه ندیده خون ندیده. این امکانم به این دهازه منوش کلمه امکان باید شایده چون زن ملتوش یعنی کلمه امکان شده چون زن در این ایام ایام و عادتش عادتاً و میبینه حیض رو چون امکان داره حیض باشه ولو الان توهره این ما حفظ بهه پس این در حقیقت کل ما رو به می میخوندن در عبارات ما برزوه کلو ما کل کلو دنن انتمه بینیش ما معوض شدید مطلب رو نمیشین کلو دنن هم کنه انیخونه این یه باش به خاطر عظمت شه. این عبارت آمد عبارت هم جا, جا شد بعد درش ادعای اجماع شد حالا کلیشی ها بیشد من حالا علیکی این راهی بود که ما رفتیم حالا مثلا به امور من همیشه عرض می کنم گاهی اون که از دو نظر به نتیجه واحد برسند ولو مسلکشون طرح بکنه مثلا آقای خویی هم واضیه میکنه قبلو نداره واضیه سن اجماری کهشون حجت نمیکنه میگه در روات هم نمیونه در روات نمیونه فقط اگر ابو لیست شما که به دست میاد بعد اخرالعن ایشون به این نتیجه هر خویی ببینید کل بدن امکنه یعنی به حسب روایات مثلا روایاتی که عقل حیث صد روز از سجده روزه اگر یه خونی رو 6 روزه دیر امکنه اینجوری معنا کنه و در از امکنه رو به امکان شرعی میگیره امکان شرعی هم یعنی اون که در روایات تو روایات یعنی مثلا اگر خون به صفات حیث بود سیاه بود و سوزش داشت و قرمز بود بعد چند روز بعدش این امکر هم یکونه هیزن اصلا قایدی امکان طبقه تفسیری که ما گفتیم مال کوفه بود مال مدینه هم نبود مال صفات هم نبود دقیقاً اون چی شد ببین در نتیجه این حضمت علمی و ارتقایی مرحوم استادای خویی ایشون بدون اینکه اون راهها به شما طی کنیم برگردید به فقه صدیا و کجا بوده و ریشه بوده در نتیجه با هم یکی شدیم اما ایشون با اون ارتکاط ترهیشون که چین چیزی در روایات احضره این نوازه ما هم تنه نکنه و مجرد دروای اجماع که کار شارط ها اون رو ترم کرده، اونه که در روایات آمده برای خونه هیز اوصافی برشن لذا ایشون چی فرمودن؟ هر خونی که واجد اون اوصاف باشه و بر روایات هیزه نباشه حالا عادتی که از اون امارات خود اوصاف من یادم رفت بگم دو تا مسلک هست یه مسلکی میگه عادتی مسلکی میگه اوصاف یه, یه مسلکی می... مسلک می... مسلک هم که جمع می‌کنه مثل ماشیه اون دو تا مسلک خیلی مسلک ما مسلکی موقعی به بسه چرب می‌کنه هم می‌خواد به این عادتی جمع بکنه هم اوصاف تخلق هم میشه دیگه با اوصاف هست تو عادت نیست تو عادت هست بدون اوصاف به می‌کنه این تخلفاتش همش مش... حنابلاً همین‌طوره هن حنابدا بین دو تا کار می کنم بین اوصاف و بین عادت اون اخلاقی کتاب شهرها داره که حالا اگر چه در لنعه یا بالا حذیب بشی اخلاق حید همینه اون قلبیش تم این مفتاحی کلید می‌شن چون در روایات ما هم اوصاف ها ما در هم عادت مشکل درست کرده اونایی که دنبال عادت بدن مشکل نداره اونایی که دنبال اوصاف بودن مشکل نداره هر کدوم کیک ما نظرش هم حیف مشکل نداره مشکل جای ما شد فرق روشن شد که ما معتقدیم از مثلا بعدها هم قائده امکان با عنوان اجماع مثلا پس بنابراین این تا این روشن رو خیلی برشون در فشت یه روز آخر هفته هستش کنند چون مثلا شنبه که احتمالا درش نباشه یه احتمال یه بینیم اموز یاده شنبه میوید ما سیعتی شنبه رو گفتیم ما مواردی رو کردیم که چطور بعدها به خاطر عظمت م و جلالت مرموم شیخ تا یک حدی هم بردنها سید و و در یک عدد از شیخ مفی دلزا علاوانی در بره شیخ شیخان فتاوای شیخ مفی و شیخ توسی خیلی تأثیر داشت در انعواد اجماع در مراحل بعدی مفید. و به عبارت اوزه فتاوای صدوق این تأثیر رو نداشت این تأثیر به فتاهای شیخ توصی در درجه یعنی توسی و مفید و سهلوندو ستایی شیخ توسی و مفید و برش شیخ توصی به تنهایی خیلی از اجماعاتی که در تاریخ و بعد بعدها منعقد میشه وقتی تحلیلش میکنیم برمیگیدیم به شیخ این تا مرحل دوبار یه توضیح محتقی